مکا مکا کشم نازو غر مکا مد روج عمر غیر عشق سر مکا مکا مکا کشم نازو غر مکا مد روج عمر غیر عشق سر مکا لهم جوی وو شیشش رو ما تو خشن روزانه زنیز شیفت رخت سو خشن لم جوی وو شیشش رو ما تو خشن روزانه زنیز شیفت رخت سو خشن و پاشیم به هم هم ره هم دل خشن و پاشیم به هم هم ره هم گل و خشون موسه شو خش ام شو و هر شو خشون آی مکا مکا هشموناز و غر مکا مد روج عمر غیر عشق سر مکا آی مکا مکا هشموناز و غر مکا مد روج عمر غیر عشق سر مکا Чи не бу агеть, дар фе гошкре? Чи не бу які то сяшро? Ось не гошкре, чи не бу? Чи не бу